صفحه چهل و هفت. از اهل خانه جاوید فقط یکی دو بار تاج ما خانم را دید. از دور بالای ایوان که با حیکل بسیار بزرگ مانند کوهی از گوشت و پیه و چربی با چادر نماز گلدار خودشکاهی سینی چای و قلیان یا قضای ملک را به اتاق تالار می برد. اتاق تالار، شاهنشین با چندین اتاق خواب اطراف آن، بنای اصلی خانه و محل استراحت خود ملک آرا و پذیرایی دوستان و رفت و آمد و مهمانهایش بود. شاهزاده کمالدین کمال ملک آرا، آن سال در سن بین پنجاه تا شست سالگی، هنوز زندگی پرتم و با جلال و جبروتی را می‌گذرانید. جاوید در این چند روز فقط یک بار سرعی خانم را دید که با بچه کوچک و ندیمه بچهش از دالان حیات بیرونی آمد و به اتاقهای مادرش رفت. آنها از آن سوی باغ گذشتند و جاوید جرأت نکرد بیرون بیاید جلو برود و با آن خانم حرف بزند. گرچه مطمئن بود آن زن سرعی خانم است. بچه او و به خصوص پرستار دوازده سیزده ساله بچه را شناخت. اصرها و شبهایی که ملک آرا مهمان داشت و یکی دو کالسکه دیگر هم توی باغ یا دم در بودند در باغ را باز نگه می داشتند. در این مواقع ابو و کالسکچی های دیگر توی باغ می ایستادند، حرف می زدند یا گاهی می رفتند توی حیات بیرونی، یک استکان چای می و باغ خلوت میشد. اگر پسرک می توانست در این ساعات از فرصت استفاده کند، ممکن بود بتواند بی سر و صدا توی تاریکی بالا بیاید از در باغ بیرونی بیرون بروند. اگر موفق به چنین کاری میشدند، کسی تا فردای آن روز یا شاید دو سه روز بعدش از فرار آنها با خبر نمیشد. اما این کار خیلی خطرناک و بیگدار به آب زدن بود، با دستور عکیدی که ملک آرا برای نگه داشتن آنها داده بود پسرک از اینکه اگر نوکرها او و مادر و خواهرش را هنگام فرار بگیرند چه معامله‌ای با آنها خواهند کرد چندشش میشد. شب جمعه آن هفته جاوید چیز تازه ای از زندگی خانه ملک آرا فهمید که برای نقشه فرارش سودمند میشد. شبهای جمعه در خانه ملک آرا مجلس روزخانی هفتگی اجرا می‌شد. از اصر در باغ را چهارتاق باز نگه می‌داشتند و عددهی زیادی از قوم و آشنایان برای شرکت در مجلس روزخانی می‌آمدند. باغ شلوغ بود و بچه های مهمانها توی باغ بازی میکردند. در این شب جمعه بود که جاوید باز سریا خانم و بچهش را از دور دید و تمام آن روز عشق بچه سریا خانم با پرستارش لیلا توی باغ بازی کردند. لیلا امروز چادر سفیدش را برداشته بود. با چارقد گلی و پیراهن صورتی و شلوار بلند سیاه از بچه سریا خانم نگهداری میکرد. خودش هم بازی میکرد. لیلا جاوید را یاد دختر پوران می انداخت. گرچه به زیبایی و حساسیت پوران نبود. لیلا درشت و سبزه بود، چشمها و لبهای درشت زنانه داشت، برعکس پوران که از همه جهت ریزه و سفید بود. یکی دو بار وقتی که لیلا نزدیک پله های مطبخ آمده بود، جاوید جرأت کرد و از او دو سه کلمه حرف پرسید. به این امید که شاید پیغامی برای سریا خانم بفرستد اما لیلا باز برخلاف پوران خیلی سر به هوا و کودن بود و جاوید مطمئن نبود که در راه کمک به فرار آنها به درد بخورد در این شب جمعه بخصوص بود که جاوید همچنین فرصت یافت از دور ملک را یکی دو ساعتی تماشا کند و برای نخستین بار این مرد را یا ظاهر این شاهزاده قاجار را مورد وارثی قرار دهد. لیلا ملک آرا را به جاوید نشان داد که بالای ایوان تارمیدار نشسته بود. به روزخان روی صندلی گوش می داد. مهمانهای مرد توی ایوان که با قالی و مخده و پشتیها مزین بود نشسته بودند. اتاق تالار پشت ایوان مجلس زنانه بود. آخوند آمده بود روی یک صندلی وسط مردها نشسته بود روزه میخواند و گریه مردم را در میآورد. یک روزخان که بلند میشد میرفت روز خان بعدی میآمد که تقریباً همان روزه را میخواند و همان دعاها و چاپلوسی ها برای سلامتی ملک آرا بانی مجلس ازاداری تکرار میشد. جاوید تا امروز هیچ وقت یک مجلس روزخانی ندیده و دیدن این مراسم برایش جالب بود. از آنجا که کیش خودش بر پایه هزاران آیین و رسوم استوار بود از دیدن هر گونه رسم و آین مذهبی که به مفهوم و تفکر ویجه اجرامی شد خوشش میآمد و به طور کلی هر چیز را که مربوط به ایمان و پروردگار و آیین بود دوست داشت. امروز قروب او به خصوص در خط و بحر ملک آرا رفته بود تا دین و ایمان این مرد بزرگ را که در این پاییز زندگی او و خانواده را قبل کرده بود بهتر بشناسد. ملک پای صندلی آخوند چهار زانو نشسته بود. مشت دست چپش را بازاویه نوت درجه روی زانو چپش گذارده بود. با سر انگشتان همان دست گهگاه توی پیشانی خودش میزد یعنی گریه می هیکل او بسیار بزرگ بود و با نیمتنه خاکستری رنگ و دکمه های تلایی بزرگتر و دروشتر می نمود. سیبیل و ریش سیاه توپی او صورتش را با عبوحت نشان میداد، داد بخصوص با آن کلاه بلند خاکستری و مدال طلا. سایر مردها به احترام ملک آرا بی کلاه نشسته بودند. موضوع روزه آن روز قروب آخوند آوردن حضرت ابوالفضل علیه السلام و بریده شدن دستهای او بود. هر وقت ملک آرا توی پیشانیش میزد، مردها با صدای بلند ناله و گریه می کردند. از قسمت زنانه شیون و زاری زنها توی تالار میپیچید. جاوید از دور این مراسم و شلوغی خانه بزرگ را نگاه می کرد و احساس می کرد که شب جمعه برای فرار شب مناسبی نیست. اگر مردم آنها را موقع فرار از وسط روزخانی می دیدند و می گرفتند کفاره هولناک تری نداشت؟ روزخانی ملک را نگاه می کرد و در این فکر بود که این آدمها به راستی چه دانش و خردی از این آین داشتند. در آموزش ابتدایی دین از بچگی به او یاد داده بودند که دین پیوند فکری انسان با دنیای خودش است. به او آموخته بودند که نشانه یک مرد یا زن با ایمان وفادار بودن به مفهوم سخن پروردگار است و پابرجا نگه داشتن پایه فکری و ویژگی ملیت پارسی، همانطور که او امشب پای پله های مطبخ نشسته بود و مجلس روزخانی و گریه دروغی ملک آرا را نگاه می کرد، فکر می‌کرد. کرد. شب که روزخانی تمام شد و آخرین روزخان دعای ختم مجلس را خواند، بیشتر مهمانهای مرد یکجا با هم بلند شدند، رفتند یک یک، دست ملک آرا را بوسیدند، بعد از ایوان پایین آمدند و خانه را ترک کردند. فقط تک و توک خودمانی ها ماندند که آنها نیز پس از چند دقیقه صحبت و اختلاط با ملک آرا رفتند. سرایه خانم آمد با بچهش مدتی کنار ملک آرا نشست با پدرش بش کرد. زنش تاج ماه خانم و مادرش بیبی بی گوهر تاج خانم هم آمدند و همه دور هم نشستند و حرف زدند. ملک آرا حالا شاد و شنگول بود دختر کوچولوی سریا خانم را سر زانویش نشانده بود. نوازش می با او بازی میکرد از جیب نیمتنش سکه درآورد و به بچه داد. حتی نیشگانی هم از لپ لیلا گرفت که گوشه قالی کنار سریا خانم نشسته بود. ملک آرا سکه هم به لیلا داد. یکی دو ساعت از شب رفته که همه رفته بودند جاوید پیش مادر و خواهرش برگشت آنها مانند هر شب بخور نمیری خورده بودند در خواب بودند یا در بیهوشی بودند جاوید خودش خوابش نمی برد برگشت آمد لب پله نشست ایوان حالا خالی بود قلوملی برای بستن در باغ آمده بود اما پیش از آن در را ببندد پیرمرد مرموزی را که از یکی دو ساعت پیش کنار در باغ توی کوچه نشسته بود صدا کرد. پیرمرد ریش سفید و کلتاس با صورت دراز و برامده و چشمهای ریز و حسابگر جهودها به صدای قلوملی مثل طرق فرنگی از جاش پرید و توی تاریکی تکیه روی زمین قل خورد آمد جلو. قلوملی گفت چند تا آوردی آقموسا؟ نیش نیشخندی بل کرد و کیسه بزرگ و سیاهی را که پشتش قایم کرده بود به قلومالی نشان داد. شش تا مخصوص. دوتام شاهانی ناب واسه خود خودش آزده. هه، همون که حکیم فرموده. قلومالی گفت خفه خون بگیر نجاست. آقموسا گفت آی به چش؟ قلومالی گفت اگه میخوای تمام زیرگذر نفهمم. موسی گفت آی به چشم. قلومالی گفت رد کن بیاد. موسی گفت آی به چشم. قلومالی گفت یالا جون بخور انتو چک. موسی کیسه سیاه را رد کرد. قلومالی پولی به او داد. و ستت انجام گرفت. قلومالی یواشکی کیسه را از جهود دمه در گرفت. تر و فرز رفت. و بعد از چند دقیقه کیسه را که بطری خالی ته آن تلق و می کرد، به جهود پیر پس داد. دوازده صفحه پنجاه و یک شب تابستانی آرام و خنک بود. ماه و ستاره های آسمان، باغ را و چلچراق و لاله های اتاق تالار ایوان ملک آرا را روشن می کردند. ملک آرا دیگر در ایوان نبود، اما کلفتاها و نوکرها داشتند آنجا سفره میچیدند پس از نیم ساعتی یکی از درگاهیهای پنج دری شاهنشین باز شد و جاوید هیکل بزرگ ملک آرا را دید که با جبه ارغوانی بلند و مریل دوزی بیرون آمد ملک آرا از پله ها آمد پایین تا میان باغ لبه حوز رسید قلب پسرک به تپشی تند افتاده بود این نخستین باری بود که او ملک آرا را تنها در باغ می‌دید این فرصتی بود که او چند روز اخیر منتظرش بود در چند ثانیه‌ای که گذشت مثل برق به سرش زد که برود جلوی ملک آرا حرفهای دلش را به این مرد بزند و امشب از او کمک بخواهد اما به زودی فهمید که اشتباه می‌کند آنها تنها نبودند در گوشه دیگر باغ، جاوید سایه قلومری را با چماغ آلبالوش دم در دالان دید. نوکرباشی نشسته بود کمین میکشید، منتظر دستور ملک آرا بود. لبه حوز ملک آرا آستین های جبهش را تا بالای آرنج بالا زد. نشست و در حالی که بلند بلند دعا و آیه های عربی می دست نماز گرفت. شرق و شروق سائدها و دستهایش را آب کشید. به فرق سر و به انگوشتهای پاهایش مست کشید. دعاهای عربی از دهانش نمیافتاد وقتی دست نماز تمام شد، ملک آرا بلند شد. مدتی لب حوز ایستاد، دعا کرد. باز از مغز جاوید گذشت که به هر قیمت شده جلو برود و با ملک آرا حرف بزند. خواست حرکت کند، اما ملک آرا فین و اخ انداخت و به بالای ایوان برگشت. در اینجا تاج ما خانم خودش برای شوهرش تاق شال و جانماز مخصوص انداخته بود. ملک آرا رو به قبله ایستاد، احرام بست، شروع به نماز خاندن کرد، جاوید او را نگاه کرد. نماز خواندن ملک آرا آرام و شمرده بود و با ادب و ترس و خلوص یک مرد در برابر الله و اکبر پس از آنکه نمازش تمام شد ملک آرا مدت دراز دیگری نشست و دستهایش را شل و پایین جلو سینه‌اش گرفت با خدای خودش راز و نیاز کرد جاوید که از سوراخ گوشه باغ او را نگاه می کرد، دلش می خواست می توانست بداند که شازده ملک آرا با خدا چه حرفهایی می زد. او هم لابد ترسهایی داشت، او هم لابد چیزهایی می خواست یا چیزهایی را نمی خواست. این چند روزه گوشه باغ جاوید جسته و گریخته به گوشش خورده بود که امسال تهران وضع محکم و حکومت تازهی پیدا کرده بود. کودتای رضاخان سردار سپه و قدرت او همه را ترسانده بود سردار سپه وضع دولت را محکم کرده بود و سختگیری میکرد شاهزاده های غدار ترسیده بودند و دست به اسا راه می رفتند به قول مش خداداد کالسکچی هوشنگ میرزا همه یک رضاخان سردار سپه میگفتند ده تا از دهنشان میافتاد ملک آرا هم امشب لابد از ترس رضاخان سردار سپه با خدا راز و نیاز و معامله می کرد. چند دقیقه بعد از اینکه جای نماز جمع شد تاج ما خانم حالا بیچادر با سینی های شام به ایوان آمد. زن کوه پیکر چندین جور مجمع قضا را از دم درگاهی از دست کلفت و آشپز می گرفت و توی سفره می چید. و دست آخر خودش رفت و سینی مخصوصی را آورد که در آن یکی دوتا بطری در یک قده بزرگ یخ بود. بطری هایی که لابد ساعتی پیش آقموسا جهود دم در آورده بود. بعد از آنکه تاج ما سفره را چید و مخده و پشتی مخصوص پرقوی ملک آرا را آورد گذاشت و همه چیز را مرتب کرد، ملک آرا از سر نماز آمد پای سفره کنار قده نشست. تاجما خانم خودش مثل کنیزهای دلسوز و حلقه به گوش آمد گوشه‌ای دور از سفره نشست و با باد بزن خودش را باد زد و خوردن و نوشیدن ملک آرا را تماشا کرد ساعتها ملک آرا همانجا توی ایوان نشست خورد نوشید خورد نوشید باد باد بزن آوردند خودش را باد زد قلیان آوردند کشید چای آوردند نوشید بعد سر نطقش باز شد، با تاج ما خانم حرف زد، بعد دنبال میرزا از قرخان فرستاد، با او هم حرف زد، دستورهایی داد. بعد دنبال قلوم علی فرستاد، با او هم حرف زد، دستورهایی داد. بعد باز قلیان و چای تازه آوردند، پسرک امیدوار شد، فکر کرد که شاید ملک آراد دنبال او هم بفرستد، تکلیفی هم برای او روشن کند. اما خبری نشد فقط آخر شب تاج ما خانم پاشد رفت سینی منقل و حقه تریاک را به ایوان آورد که انگار آخرین آین های شب جمعه شازده ملک آرا بود اندکی پس از نیمه شب که همه رفتند خوابیدند، باغ دوباره تاریک و خالی شد و قلوم زردنبو برای قف کردن در آمد جاوید هنوز سر پله های مطبخ بیدار نشسته بود هنوز که بیداری تخم جن، جاوید پرسید، آقا درباره من چیزی نگفت، قلومالی گفت، شاید فردا شانست بزنه، امشب که چیزی نفرمودند، چطور، قلومالی گفت، ما زمینه رو چیدیم، حالا خوب گوش کن، بهت میگم با چیکار چی کار کنی، فردا یا پس فردا، وقتی آقا میخواست بره بیرون، تو دست به سینه میای میری جلوشون، دولا میشی دست آقا رو ماچ میکنی. نه دلا میشی پای آقا رو ماچ میکنی. میگی یعنی با ادب و اجازه میخوای که براشون نوکری کنی. همینجا باشی بندگی کنی. تا بعدها ببینی چی پیش میاد. جاوید در تاریکی به نوکر باشی نگاه کرد. هیچی نگفت. قلومالی گفت. ملتفت شدی؟ جاوید جواب نداد. قلومالی گفت. چه کنم چه کنم نداره همون که گفتم یا با توی اون تاریکی و کسافت بپوسی و مادر و خواهرت هم بپوسند یا اجالتا نوکریه آقا رو بکنی تا بعدها ببینی چی پیش میاد. جاوید سرش را تکان داد. با درد بساز تا به درمون برسی. نه. فردا شروع کن این پا وردار هم مال. اون پا وردار هم مال. نه. ماهی رو هر و غذاب بگیری تازه است. ماهی رو هر و از بگیری مرده است. سرش رو انداخت پایین و دیگر بلند نکرد. شنید که قلوملی رفت در باغ را گفت کرد و شنید ته انباری کسی ناله میکرد. لابد مادرش بود که خواب بدی میدید یا لابد افسانه بود که از درد و گرسنگی مویه میکرد. تمام شب میان تاریکی نشست. و اراده اش را در مغزش مرور کرد او هرگز پای ملک آرا را نخواهد بوسید این رفتار نیک یک آزاده نیست او جلوی ملک آرا میرود می ایستد درست اما به برای اینکه راستی و درستی داستانش را بگوید و حقش را بخواهد همین 13 صفحه 55 صبح جمعه خبری نشد، باغ خلوت و ساکت ماند. بعد از ظهر یک کالسکه و چندتا مهمان آمدند و ساعتی توی تالار با ملک آرا بودند. ملک آرا بیرون نیامد. جاوید منتظر نشست. انتظار و سستی بیهوده ماندن داشت دیوانه‌اش میکرد. بامداد روز شنبه او آماده بود. از سپیددم دم مترسد آمد سر پلهها نشست. چیزهایی را که باید به ملک آرا بگوید در ذهنش آماده کرده و چندین بار مرور کرده بود. تمام حیات و باغ نیز برای فرود ملک آرا جارو شده و آب پاشی شده و آماده بود. نوکرها و سایر مستخدمین دوربر کالسکه توی باغ منتظر پایین آمدن ملک آرا بودند. حتی میرزا از قرخان با عصا و دفتر آمده لب حوز ایستاده بود. نزدیک ظهر ملک آراب با صرفه و اهن و طلب از بالای ایوان و پله ها آمد. هر یک از مستخدمین از زیر چشم او را می پایید و به کاری مشغول بود. علاوه بر میرزا از قرخان، قلومالی، ابو یک نوکر و دوتا از پسرهای بزرگتر قلومالی توی باغ بودند و دوتای آخری داشتند با و دستمال بدنه کالسگه را سیقل می دادند. جاوید بلند شد و برای نخستین بار پس از پنج روز اخیر از سوراخ زیر زمین مطبخ خارج شد. به طرف کالسکه ملک آرا آمد. اول میرزا از قرخان جلو رفت. چند کلمه با ملک آرا صحبت کرد تعظیم کرد. بعد قلوم دست به سینه رفت جلو. او هم دو سه کلمه رد و بدل کرد و تعظیم کرد. ملک آرا آمد کنار در کالسکه ایستاد. مکس کرد، جاوید از کنار دیوار قدمی به جلو برداشت، زیر لب سلامی کرد، اما هنوز لبانش را درست باز نکرده بود که ملک آرا با عصای مرسع به طرف پسرک اشاره کرد، از قلوملی پرسید، اینه؟ نکرباشی گفت، بله حضرت اشرف، ملک آرا گفت اگر این میخواد نوکر من باشه و هر روز چشم من تو روی کسیفش بیفته باید اول حسامی آدمش کنید تا مردم پشت سر ما حرفی نزنند. جاوید نفهمید درباره چه حرف میزنند. قلوم علی گفت چشم حضرت اشرف. او هم لابد هنوز نمیدانست. ملک آرا دستور داد او زبیح را خبر کنید. چشم حضرت اشرف. زود همین الان. بله از ساعه حضرت اشرف دوید به یکی از پسرهایش چیزی گفت و آن پسر فوری از باغ پرید بیرون و توی بازارچه قیب شد جاوید هاجواج مانده بود که او زبیح کیست و موضوع چیست قدم دیگری جلوتر به سوی ملک آرا برداشت خواست چیزی بگوید اما ملک آرا اصایش را آورد بالا و گفت خفه خفه بعد شهزاده قاجار به طرف مباشرش رفت و مدتی با او مشغول شد. ده دقیقه بعد پسری که دنبال او رفته بود همراه آقل کیف به دست برگشت. این مرد سفید رو و سیبیل کلفت بود با قیافهای بین سلمانیها و قصاب ها. او آمد توی باغ رفت جلو دست ملک آرا را گرفت و بوسید و تعظیم و عرض سلام بندگانه کرد. ملک آرا با عصایش به سوی پسرک اشاره کرد. خطاب به اوستازبیه گفت، اونه یالا بخابونش و حلالش کن. اوستازبیه جاوید را برانداز کرد. گفت، چشم حضرت اشرف. ملک آرا گفت، همین الان. اوستازبیه گفت، به چشم حضرت اشرف. به سوی نوکرها نگاه کرد. گفت، یک پتو و یک سینی و یک بادیه آب جوش بیاورید. بخوابانیدش همینجا لب باغچه جاوید اول خیال کرد میخواهند سرش را ببرند. بعد حسرت خورد چرا نبریدند قلومالی دنبال پتو و سینی و آب جوش رفت. ابو شلاق شلاغ به طرف پسرک آمد که دست او را بگیرد. جاوید خودش را با فشار و خشونت عقب کشید. ابو گفت نه ترس بزمجه کاریت نمیکنند. ولم کنید. با حلال و مسلمون باشی، زد زیر خنده، نه، فقط میخوام ختمت کنن، نه، و به گوشه باغ دوید، ملک آرا داد زد، بگیرید، بخوابانیدش. و با این فرمان، آن روز صبح شوم، بزرگترین علمشنگه فرار و تعقیب که خانه ملک آرا و زیرگذر هرگز به تاریخچه خودش ندیده بود، آقاد شد، او سازبی داد زد، بگیریدش، بخوابانیدش. بگیریدش، بخوابانیدش، و همه ماجرا سایه از مسخرگی و لودگری هم داشت. جاوید دور باغ می و عبو تراب، اوسازبی، دو دوتا پسر قلوم علی خان حتی میرزا از قرخان چلاق دنبالش می و نمی توانستند او را بگیرند. داد و قال و فریاد راه افتاده بود، حتی از پای کالسگه ملک آرا داشتند رم می کردند. بگیریدش، بعد دو سه تا بچه خورده دیگر هم از حیات بیرونی دویدند آمدند و به گروه تعقیب کنندگان اضافه شدند وقتی قلوملی هم با پتو و سینی و بادیه آب جوش آمد ملکارا گفت بدو بگیرید بیاریدش قلوملی هم چیزها را کنار باغچه گذاشت او هم با فتح و ورم بیزش شروع به دویدن کرد به زودی پنجره های اتاق و بیبی بی گوهر تاج خانم هم باز شدند. زنها هم سرهاشان را کشیده بودند بیرون ببینند چه خبر است. جاوید میدوید و نمی‌خواست او را بگیرند و کسی هم نمی او را بگیرد. مادرش و خواهرش یادش رفته بود هیچ فکر و منطقی نداشت. از روی غریزه انسانی فرار میکرد و نمیخواست او را بگیرند و بدنش را ببرند. وقتی گوشه باغ او را محاصره کردند او زد از توی دالان گریخت و به حیات بیرونی رفت. اما اینجا هم به زودی نن احمد و آشباز پاشی و چندتا تا بچه دیگر که سر و صدای بگیرید بگیرید را شنیده بودند دنبالش افتادند. جاوید پرید سر دیوار و رفت بالای پشت بام. و بچه ها و اده ای از بزرگترها هم دنبالش دویدند، از روی پشت بام ها از روی دیوارها و بام ها می پرید و بچه ها دنبالش، و طولی نکشید چند تا دیگر از بچه های محله هم به دنبال او افتادند، منظره ای بود، جاوید از روی پشت بام های, اتاق های دور تا دور باغ ملک آرا و خانه های اطراف میدوید می‌پرید می پرید و لشکر نوکر های ملک آرا و بچه های محله هم دنبالش. دست آخر وقتی میرفت که از روی یکی از پشت بام های ملک آرا روی پشت بام خانه سرعی خانم بپرد، پایش سر خورد، افتاد روی لبه دیوار باغ. از آنجا هم افتاد توی باغچه. بچه ها ریختند روی سرش او را گرفتند، کشان کشان آوردندش، او تقلای مرگ و زندگی میکرد و بچه ها آوردندش لبه حوز جلوی ملک آرا که هنوز آنجا غضبناک ایستاده بود، بقیه بزرگترها هم به تدریج نفس, نفس زنان و فوشگویان رسیدند، ملک آرا گفت، او سازبیه، به پدرسگ پدر سگ پدر سختارو. بچه ها و بزرگترها کتف و بازوی او را گرفته بودند زور می زدند ملک آرا حالا با قیز و دست به کمر ایستاده بود قلوملی پتو را انداخته بود لب باغچه. او سازبیه در کیف سیاهش را باز کرده بود اما چه کسی می توانست جاوید را روی پتو بخواباند هیچ کس و انگار هیچ نیروی حریف خواباندن او نبود میرزا اسقرخان حالا لنگلنگان آمد جلو به ابو تراب اشاره کرد ابو تراب چماقی از بند کمرش درآورد و بلند کرد محکم توی سر پسرک کوبید ضربت مرگ و از پای در آمدن بود اما جاوید آن را هم تحمل کرد ایستاده باقی ماند ملک آرا فریاد زد بخوابونیدش حالا دیگر موضوع ختنه و حلال کردن و مسلمان کردن نبود حالا موضوع سرکوب کردن و از پای درآوردن یک پسر جسور و نابکار خارجی بود که به حریم این خانه تجاوز کرده بود، سرپیچی و خرابکاری میکرد. همه بزرگترها یکجا دوربر جاوید ریختند، او را گرفتند، توی سر و کله‌اش زدند، بلندش کردند که روی پتو بخوابانندش. اما جاوید میلولید تقلا میکرد از لای دست و پایشان بلند میشد نمیگذاشت بدنش مانند یک بره کوچک اما یک بره جادویی بود که از دست یورش کنندگان خود میلغزید و پرواز میکرد نیرویی در او پیدا شده بود که شگرف و بابر نکردنی بود خودش هم نمیفهمید و نمیدانست اما مغلوب نشدنی بود